بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم النبيين وآله وصحبه أجمعين أما بعد بسو دومين دارس از دروس شرح شمائله رسول الله عليه الصلاة والسلام تعليف امام الترمذي رحمه الله واسكان فسيح جناته سادوشت سنوه مين حديث إمام الترمذي رحمه الله ميقويات حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا أبان بن يزيد عن قتادة عن شهر بن حوشب عن أبي عبيد رضي الله عنه قال طبخت للنبي صلى الله عليه وسلم قدرا وقد كان يعجبه الذراع فناولته الذراع ثم قال ناولني الذراع فناولته ثم قال ناولني الذراعة فقلت يا رسول الله وكم الشات من ذراع فقال والذي نفسي بيده لو سكت لنا ولتني الذراع ما دعوته حديث للأسنادي الشهر بن الحوشب زعيف هاس ولكن شاهد دار كتاقبياتيش ميكونا ونا رواية أبو رافع وخاطر هامين إن حديث راول الباني تسحيهش ميكونا إن حديث را صحابي رسول الله عليه الصلاة والسلام أبو عبيد رواية ميكونا أبو عبيد ميقوياتك تختم قشتي ربري رسول الله عليه الصلاة والسلام قبل مي طبخت للنبي صلى الله عليه وسلم قدران يك قبل مي گوشت درست ميكنه عليه الصلاه والسلام اكرام كرمونه غوغري فقد كان يعجبه الذراع مدون سمم كان رسول عليه الصلاه والسلام دوست داره گوشت ماهیچه گوشت بازو گوشت دست ميگه فن اول الذراع از بين اون گوشتا جوشت دست رو انتخاب كردم ماهیچرا دادم براي رسول الله عليه ثم قال ناولني الذراع دادم بهش بعد رسول الله عليه الصلاه والسلام گفت كه بده دادم بهش ثم قال ناولني را دوباره بهم گفت بار اول داد خودش بار دوم رسول الله صلی الله علیه و خودش خواستن اول خودش داد بعد رسول الله علیه و سلم ازش یک بوز بوده خوب. بز هم دو تا مویچه بیشتر نداره دو تا مویچه دست صحابی از باب تعجب میگه بعد از ازیک رسول الله علیه و سلم برای 15 میگه دوباره میگه مویچه بهم بده گوشت مویچه گوشت دست میگه فقلت یا رسول الله و كم للشاته من ذراع میگه بز چن تا دست داره چن تا مویچه داره مگه فقال رسول الله عليه الصلاه هش میگه از باب معاتبه حساس از زنشه گل ذی نفسي بید قسم که جان ما به دستوس قسم با الله یعنی لو سکت اگر ساکت میشدی شدی دست اون قابلمه اوندی که میکردید لنا ولتنی از اون گوشت مویچه میدادی همچنان لنا ولتنی الذراع ما دعوت همچنان چنان که هی تو به من میدادی مردی که من از تو یعنی الله جل و علا گوشت برات میذاشت و میدونستی که این قضیه موعجزه هست ولی کنه حجله کردی اینم رسول الله علیه السلام تذکر میده ولی اینجا هم نیسته شخص عجله نکنه و بعد اعتماد به رسول الله علیه السلام در ازت میخواهد تو عمل بهش رو کن یک نوع ادب کردنه یک نوع تربیته یک نوع سرزنش با ادب با لطف با خصوصا اینکه ابتدای سخنش هم قسم یاد میکنه که مثلا این چیزی که من دارم ازت میخوام تو باید بهش ایمان ارتقاد داشته باشی این نفسی منم من پیغمبرم بالاخره دارم از تو میخواهم قسم به کسی که جانم دستوس اگر تو حرفمو گوش میکردی همچنان اون مایچه رو به من تقدیم میکردی میدادی این ایمانه اعتقاد اینکه رسول الله علیه و السلام حرف اضافه نمیزنه حرف که حالا می‌خوام تو پرانتز بذارم یک حرفی که بی‌محتوا باشه، بی معنا باشه. نمیزنه رسول الله علیه و آله حرفی که داره میزنه میدونه چی داره میگه. وقتی که میگه به مایچه بده، یعنی مایچه خدا میذاره تو اون قبالمه برات، تو باید اطاعت ام بکنی. اگر نبود، گشتی، بعد اعتراض کن. هنوز تو نگشتی، تو داره میگه که خب بذات مایچه بیشتر نداره. این اسایای ادبه. این اسایای ادبه با مقام نبوت، اون کسی که لا ینتقو عن الهوا. ونكسي كاس قدش هارف نميزانا ونكسي كي مؤيدة بوحي إلهي هاش صلى الله عليه وسلم سادو هافتودو مين حديث امام الترمذير رحمه الله من بيات حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا يحيى بن عباد عن فليح بن سليمان قال حدثني رجل من بني عباد يقال له عبد الوهاب ابن يحيى ابن عباد عن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت ما كانت الذراع أحب اللحم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه كان لا يجد اللحمة إلا غبة وكان يعجل إليها لأنها أعجلها نضج هذه زيف تعرض عبد الله بن قبل سيكي قابلاني نجا آیشه میگید که گوشت مایچه بازو محبوب ترین خوش ترین گوشت برای رسول الله صلی الله علیه و سلم نبود بلکه رسول الله علیه و سلم کم گوشت میخوردن هر از گاهی و چون گوشت مایچه زود پخته میشد زود در اون قابلمه یا هر جایی که مثلا لال کباب هم اگر میشد زود پخته میشد رسول الله صلی الله علیه و سلم اول از اون شروع می کرد اول از اون گوشت ماهیچه که زود پخته میشه شروع می کرد ولی خب گفتیم این حدیث چیه زيف. بعد شام زايفة سأدوا أفتدوا إيكم من حديث نمام الترمذي رحمه الله من حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا مسعر قال سمعت الشيخا من فهم قال سمعت عبد الله بن جعفر رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أطيب اللحم لحم الظهر حديث قابل درس نداش فلاح ابن سلمان بود و عبدالله ابن احیا که هر دوتا علت زعفشه. این حدیثم هم مبهم. سمعت و شیخان من فهم یک شیخی، یک شخصی کیه؟ الله علیم. گفته شده محمد بن عبدالله هست که در علم جرح و تعديل یاد شده که مقبوله. ولی که این حدیث نیاز به شاهد متابع چیزی داره که تقویتشو بکنه که نداره. حدیث ضعیف. چیزی نیست که تقویتشو کنه. چی هست؟ لفظ حدیث. لفظش هم مشکل هست. بله. عبدالله بن جعفر رضی الله عنه میگیاد که شنیدم رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید خوشمزه ترین گوشت، خوشمزه ترین گوشت، خوشترین ترینش، خشترین غذا، خوشتان بعث گوشت رو داره میکنم رسول الله علیه و سلم اینها طیبان لح، خوشمزه ترین گوشت از حیوان لحم ظهر گوشت کمره پشته یا گوشت هم راسته گوشتی که روی کمر حیوانه. الان قسم برای رکوبیده یا غیر. چون راحت چرخ میشه و الی آخر از گوشت راسته استفاده میکنن و گوشت اپسندیده ای هست برای خصوصا آشپزها ولی حدیثی در موردش نداریم این حدیث هم که داریم ضعیف و هیچ هم شاهدی براش نیست بلکه اون گوشتی که رسول الله علیه و سلام ثابت در دوست داشته نسبت به اون گوشت چیه گوشت موی گوشت بازوی دست 172 و و دومین حدیث امام ترمذی رحمه الله میگوید حدثنا سفیان بن وکیع قال حدثنا زید بن الحباب عن عبد الله بن المؤمل عن ابن أبي ملية عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم الإدام الخلو حديث صحيح زيفه صحيح قبل عن دشت هاتش هكين اسناد دشت مشكل هاس سفيان بن وكيع صدوق عبد الله بن مؤمل اهميته ولكن الحديث طروقه الشواهدش خيال زيادة حديث صابت بهترین چیزی که میتونیم خسن نون یا غذایی که خشکه باش باشه بکنیم نر بکنیم اون نون را یا اون برنج را که راحت خورده بشه بهترین چیز اینجا رسول الله علیه و سلم میگه چی سرکه هست چون چیزی دیگه نبود نظر رسول الله علیه و سلم این بهترین چیزیه که الان میتونیم باش اون نون را بخوریم مثلا یا اون غذایی که الان خشن اونجا میل بکنن که قبلا بحثش و مفصل گفتی خصوصا از سخنان ابنا قیم رحمه الله که اینجا در این حدید دلالتی بر برتری سرکه نیست برتری سرکه بر دیگر غذاها نیست بلکه یکی از انواع مصلحات هست که میتونیم اون غذای سفت را بهاش نرمش بکنیم و بخوریم که جویدنش و هضمش برای ما راحت باشه یک مصلحی هست برای غذا والا خوصا این کلمه زیاد در طب سنتی استفاده میشه میگن این مصلح ماست، این مصلح فلانه سدوها <سادت> فتودوا السفومين حديث. الإمام الترمذي رحمه الله من جياد حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن ثابت أبي حمزة الثمالي عن الشعبي عن أم مهان رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فقال عندك شيء فقلت لا إلا خبز يابس وخل فقال هاتي ما اقفر بيت من ادمن فيه خلون ام هانئ الله عنها میات روزی رسول الله صلی الله علیه و سلام نزد او آمدن تشریف آوردن حق داره احساس بزرگی بکنه مهمانش رسول الله علیه و سنت و سلام تشریف آوردن نزد رسول الله علیه و سنت و سلام فرمودن چیزی داری بخوریم فقلت لا چیزی نیست الا خبزون یابس مگر نانی خشک و خل و سرکه این دو تا چیز تو خونه دارن چیز دیگه نیست نانی خشک و سرکه. فقاله صلى الله عليه وسلم هاتی بیارش. ما اقفر بیت من اود فيه خلون ما اقفر بیت. یعنی خانه و منزلي که درش سرکه هست بی غذا نمیمونن بی غذا نیستن. چون معمولا نون خوش سخت خورده میشه چوب بیشه وقت خودشان در نظر بگیری زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم آسیاب که نبوده که دیگه بخوان گندمشو باش آرد کنن نونی که هم میپختن هم غلیز بود از جو خصوصا یا از گندم غلیز بود و خشک اینجا رسول الله صلی الله علیه وسلم میفرماین خونه ای که خونه و منزلی که درش سرکه هست که بتونن با آن نون بخورن بی غذا نیستن اینجا آدم به مقصود غذاست. ما اقفر بیتون من ادمن یعنی اون خونه خالی از غذا نیست خونه که درش سرکه هست چون میتونن باش با اون سرکه میتونن نونشون رو باش نر بکنن و میل بکنن بخورد سد و هفتاد و چهارومین حدیث سد و, و حدیث امام ترمذی رحمه الله میگوید حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن مرة الهمداني عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فضل عائشة رضي الله عنها على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام إن حديث درس هنا بخاري ومسلم إن حديث هم فضل عائشة هذا برتريش در مقابلة زنان عالم نه زنان, زنان خيلي هرفه خيلي هرفه رسوله علیه سلسل و سلم زنان عالم فضل عائشه علی النساء بر زنان رو خیلی حرفه خیلی حرفه این مدح الله علیه سلسل و سلم به نسبت اون عائشه یه قسمتش فضل امنع عائشه هست یه فضل فرید هست فرید چیه؟ فرید خورشه که نونو درش میلی زن که اونو نونه قاتی چی بشه قاتی اون غذایی که اون آب گوشت و خورشی که درست کردیم این میشه ثرید رسول الله صلی الله علیه و ثرید را خیلی دوست داشت آب گوشت رو، خورش رو خیلی دوست داشت میگه غذاها مختلف و متفاوتند خیلی غذا داریم بهترین غذاها ثریده امین عاششه هم از میان زنه هم مثل ثریده در مقابل دیگر غذاها درست؟ این شرح حدیث ولی که حدیث فقط اینجا نیست یعنی نمیشه اکتفا کرد به این مقدار شعر بسنده بکنیم فقط به این توضیح نه درس خیلیش توش زیاده الان در حدیث یک اشاره هست بین که رسول الله علیه و سنتو سلام از میان غذا خیلی دوست داشتن فرید چی گفتیم خورش و آب گوشت که با اون نون را نرم می‌کردن و با نونش هم می‌خوردن گوشت تو اون خورش تو اون آب گوشت باید روی آتش بذاری تا پخته بشه نرم بشه گوشت نرم میشه خوشمزه میشه بعد معده راحت هزمش میکنه راحتم از گلو اون نون پایی میره چون نر شده با اون آب گوش غذا دیگه خوش نیست هم خوش خوشتعمی خوشمزگی هم منفعت برای جس چون معده بهتر و راحت تر میتونم هضمش میکنم بهترم تو میتونه بچابونی حتی اگر دندونم نداشته باشی غذا هم نرمه و هم پرسود و منفعت برای جسمت غذا هرچی نرتر باشه بدن بهتر میتونه هضمش بکنه خب الان علت دوست داشتن فرید را گفتیم چرا رسول الله سلیم فرید یا تلیت که بعضی حال تلفظش میکنن. چرا این غذا را رسول الله سلیم بیشتر دوست داشتن خاطر اینها بود خب اون نوعیه چرا قیاس گرفته شده با فرید چرا چه وجه ربطی هست بین اومین عایشه و بین فرید اوله آب گوشت خورش غذای تنته اون گوشت اون نون غذای جونت میشه باش قوت میگیره. درسته شما در نظر بگیرید عایشه رضی را دیرنانها نبود شما غذای روح علم را نداشتید علم غذای روحه علم غذای روحه اگر گوشت و نون جان را تغذیه میکنه علم روح و روانت را تغذیه میکنه و امونین عائشه در مقابل دیگر زنان در اهمیت به علم واضحه ملموسه هر از راه شما در میان احادیث فرید یا ابو هرره یا امونین عائشه کم ندارید از احادیث امونین عائشه خیلی اهمیت میداد به علم و یاد گرفتن و به این غذای روح امتك الله جل وعلا بيگ در مورد علم حسین اون علمی که قران اوهینا الیک الروحا من امرنا اسم قرآن و این وحیش را گوزاش روح ما كنت تدري کتاب الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا علم هم نور هم روحه همون که روح تن را رو زنده میکنه علمم تن را زنده میکنه همون که غذا جان را تغذیه میکنه علم روح را رو تغذیه میکنه خب چه ربطی داره به اون عایشه گفتیم ومن هنا از میان همسران رسول الله صلی الله علیه و آله اهمیت خاصی به علم میدادن گاهی رسول الله صلی الله علیه و آله ول نمیكره حتی که شب ها بیرون میرفتن چه مسجد چه بقیه پشت سر رسول الله صلی الله علیه و آله میدویدن میرفتن حریص بودن بر اینکه از رسول الله علیه و آله یاد بگیرن و به دیگرانم یاد بدن این یک قسمت بحثه یعنی یک برتری از این حدیث میشه برداشت کرد نسبت به ام المؤمنین یک قسمت از حدیث قسمت دیگرش بحث خود ارتباط ام المؤمنین از با رسول الله علیه که گفتیم نونه و یک قسمتش خورش آب اون نان خشک نرم می‌کنی و راحت می‌جوی پایین میره از گلوت زنا هم چنینن بعضی از زنا راحت از گلو پایین میرن بعضی از زنا خارن تو گلو قابل هز نیستن قابل تحمل نیستن زنا میتونن امPrintln عایشه راحته حرف زدن باش راحته شوهرش باهاش راحته باهاش راحت شوخی میکنه شما داشتید دیگه قبلا شوخی رسول الله صلی الله علیه و سلم با امPrintln عایشه مادر رسول الله صلی الله علیه وسلم سرش درد میکنه. اون آیشه میگه سرم درد میکنه. آخ سرم. میگه خالا چی میشه؟ تو هم مردی من میشورمه تو کفنت میکنم و نماز رود میکنم. اون آیشه بعد میگه که میخوای من بمیرم پیش مرگت بشن که پیدیدی که بازنه دیگه تو ایل آخر؟ بعد رسولان سلام بیگه شوخی داره میکنه چون میدونه زنش تحمل داره ظرفیتشو داره خاره تو گلوش که نیست قابل حزمه براش میتونه راحت باش صحبت بکنه حرف دلشو بزنه ولی بعضی از زنان نه تحمل نداره شوهرش به خواهرش بگه عزیزم به مادرش با لطفی محبتی صحبت بکنه تلفنی حالی احوالی بپرسه خاره تو گری اون شوهر جرأت نداره که کادوی بده به خواهرش یا یک ارتباط عاطفی با خواهرش و با مادرش برقرار بکنه اصلا ظرفیتش نداره حالا دیگه حب و روسرش بیاد دیگه اون مسئله چیز دیگه است امین بن هشت تا داره هشت تا داره با هشت تا هم میره حج و برمیگرده اگر میخوای بدونی فضل امین بن با اون سن سال کمش در مقابل زنا تحملش رو ببین در مقابل هشت تا دیگر اینی که رسول الله صلی الله علیه و سلم داره مدحش میکنه و این مد تشویق برای زنا دیگر تو سری نیستا و به حقم داره تشویق میکنه که زنان دیگر یاد بگیرن، درس بگیرن. این تشویق برخلاف آن چیزی که روانشناسان میگن قیاس نگیر و برای بچت الگو قرار نده و مثال نمیدنم بهتر از اون نزن. کی گفته؟ رسول الله صلی الله عليه وسلم برای زنای داره امون عایشه مثال میزنه. یک زن خوب امنی عایشه است. یک زن سبز امونین عایشه است. یک زن که حب علم و دین رو داره امنی عایشه است. میخوای برتر باشی، متاثریت مثل این غزایی که من دوستش دارم مثل امنی عایشه باشید. نار باشید در تا آمولتون شوهر خوب باشید در مقابل استفاده از اون شوهر استفاده از اون علمش بیاید استفاده بکنی بهره ببرید که ازتون این فضل و فضیلت رو میگیره کی جلوت رو میگیره که شما این فضل رو نداشته باشید خودو خودتون محروم کردید ولی عایشه پیشتاز میدانه در این باب در حرصش به یاد گرفتن در حرصش به پای رسول الله صلی علیه و اگر تهجد اومده رسول الله علیه و در مسجد اومده کنار رسول الله علیه و وسلم در مسجد اعتکاف میکنه امین عائشه بعد زنان بقیه از امن عائشه یاد میگنم یا تو مسجد که اعتکاف بکنن خب این چیه؟ حب عبادت از امن عائشه رضی الله عنه حب عبادت داشت حب دین رو داشت حب علم رو داشت و رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم از باب تشویق داره مثال میزنه به زنان و دیگر کی مثل امن مومنین عائشه؟ فتنه ها او را پخته بودن مثل گوشتی که الان نر شده امون آش چنین بود کم منافقین بهش تهمت زدن بهش ناروا بس. کدوم زن از همسران رسول صلی الله علیه وسلم این چنین ابتلا شدن داغ به دلشون نشست از این و اون از این منافقین با اون همه تهمت ولی که به پای رسول الله صلی الله علیه و سلم نشست. الان زن اگر مردش اسم حوبیار رو میخواد فرار بکنه تلاقم بده میرم طلاق هم می‌گیرم در صورتی که میدونه اون زنم که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن که زن اگه اتقاضای طلاق بکنه بوی بهش هم به مشامش نمیرسه. ولی با این وجود اسم طلاق برش مثل آب خوردنه ولی که اون خیر با وجود که دو ماه هم نشسته از دفاع از صرف رسول الله نسبت به خودش نشنید رفت خونه پدر نشست مریضم بود توقع داشت که رسول الله سلام ازش دفاع بکنه ولی که الله ازش دفاع میکنه از آسمان هفتم صبور بود محکم بود در دینش در اعتقادش در ایمانش حب آخرت را داشت مثل آسیه همسر فرعون رب ابن میر بي اندک بیتم فی الجنه اهل بهش بود و در این حدیث شما میتونه لمس بکنید این قددانی که داره رسول الله ص از ام المؤمنین میکنه لمس میتونید بکنید مجدگانی به ام المؤمنین عائشه که یکی از زنان بهشتیه یکی از زنان بهشتی چرا چون رسول الله ص داره رضایت خودش رو خشنودی خودش نسبت به ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها داره بیان میکنه خشنودی یا خشنودی است راضی یا راضی نیست با دل خوشی داره تعریف و تمجید میکنه از ام المؤمنین عائشه رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیث میفرمایند الا اخبرکم بنسائکم من اهل الجنه میخوای بیتون مثال بزنم از زنان بهشتی تو منی زنه بهشتی کیه؟ اولیش ودوده. محبت شوهر رو داره. دوست داره شوهر رو نمیخواد به رنج نشه، ناراحتش بکنه. اولیش. دومی ولوده. بچه‌میزای. مثل زنای دیگر نیست که فرار بکنه. من تحمل بچه‌را ندارم. کی گفته که باید بچه‌بیارییم؟ از همون سال اول ازدواجشون کلکل کل می‌کنم با هر که یکی بس، دو تا بس. او حملته و کرها و وضعته و کرها. نمیخواد اصلا بچه‌بیاره. در صورتی که رسول الله علیه و آله تشویق می‌کنه به بچه‌زایی و به این که امت محمد را علیه و آله زیاد بکنی. زن بهشتی گینه. محبت شوهر رو داره بچه چه میاره ععود خیرخواه شوهره. نمیاد شوهر رو سوزنونه کباب بکنه به خاطر اینکه خودنمایی بکنه. زنای امروز اینطوریه. مب میخواد آشپزش کابینتش فلانی میخواد فرشش نمیدونم اینطوری میخواد طلا انگو تا اونجای دست میخواد گردن من طلا غیر سیرم نمیشه ولی لیکن زن بهشتی نه؟ همه در دنیا و مال دنیا نداره مثل امنین عایشه وقتی که رسول الله صلی الله علیه و آیات نازل میشه در باب معاتبه و سرزنش اگر شما زنه رسول الله صلی دنیا رو میخوای بهتون میدیم دنیا یعنی این اختیار رو بهشون میده پیغمبر خدا رو میخوای دنیا رسول الله صلی الله علیه از اون عایشه شروع میکنه تو کدوم یک انتخاب میکنی دنیا رو میخوای من رسول و سلم، تو را نداشته باشم چی دارم دنیا رو چیکار اولین چیزی که سوال پرسید اول پیش آیشه بودی چی انتخاب کرد منو انتخاب کرده اون منو با این سن سال کم تو انتخاب کرده ما که پیر زنیم چی میخوایم دیگه از این دنیا ما هم که رفتنی ما هم تو رو می‌خوای همه رسول الله صلی الله علیه و سلم انتخاب کرده عودا اهل آخرت آسیان آسیوارن رب ابن لي عندك فی الجنه فرعون مول نمیخواد بهشت الله را می‌خواد می‌خواد طعم میوه‌های بهشتی را بچشه نه این دنیا و این میبه ها و این خوشی های دنیا این آسیه وار بودنه این عایشه وار بودنه عایشه چنین بود اومانونین رضی الله عنه اوودو على زوجیها التي اده عادت اوودیت چه خودش اذیت کرده؟, کرده؟ چه و چه شوهرش اذیتش کرده؟ چکار میکنین زنه بهشتی جت تخذ و بیادی زوج هم میاد باجه شوهرش در حقشه دست شوهر را میگیرد و متقول والله لا اذوق و غمضن حتى تعاقداد چشم نمیذارم رو هم تا اینکه از من راضی بشی. شوهرش اشتباه کرده دست و دستش شوهر گذاشته؟ میگه نمیخوام چش نمی بندم تا اینکه از من راضی بشی. شوهر را میخواست راضی نگه داره چرا تا اینکه رفیق شوهرش باشه در بهش. امید عایشه چنین بود؟ این صفات نسا و زنان بهشتیانه اگر همسران ما میخوان بهشتی باشن باید بهشتیوار زندگی بکنن باید آسیهوار هم زندگی بکنن باید عائشهوار هم زندگی بکنن, هم زندگی بکنن. چنان چه بودن هم مغم علم و دین رو داشتن زنای ما هم باید چنین باشن تا چنین جایگاهی هم داشته باشن و اهل بهش باشن و این چنین مدحی مستحقش باشن. این استحقاق این ویژگی و برتری که بنی پیدا کردن همینطوری نبود مفتی و مجانی نبود پخته شده کنار رسول الله صلی الله علیه با فتنه کنار رسول الله صلی الله علیه در جهاد ها در غزوات سختی‌ها را کشید رسول الله صلی الله علیه و آله عمرش در جهاد بود یه بار روی خودش نمیدره چرا تو هی میری جهاد چرا هی میخواد دینو نصرت بدی نه تو حبو گذاشتی بعد از دو ماه سه ماه میای طرف من تو همیشه سفری تو همیشه داری جهاد می‌کنی شما در نظر بگیری ده سال تو مدینه تو خونه رسول الله علیه و آله و سلم رسول الله علیه و آله هم رازگاهی هی میره جهاد یک ماه دو ماه داره برمیگرده اون روزی هم که میاد یک هفته دو هفته که میاد هم مدینه یک ماه که میاد مدینه باید بین نه نفر تقسیم بکنه صبر رو می‌خوای ببینی یک مثالی از بهشتیان رو می‌خوای ببینی؟ ببینم اون نوش. چنين باش تا باشی از اهل بهشت. بني بني باشت باشت باشت. سادو 175 <افتودو تنجومين> حدیث <سادو> امام ترمذی رحمه الله میگه: <يات> حدثنا علي بن حجر قال حدثنا اسماعیل بن جعفر قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر الانصاری ابو طواله انه سمع انس بن مالک رضی الله عنه يقول قال رسول الله صلی الله علیه و فضل عائشه على النساء که فضل على سائر الطعام حدیث قبل رو داشتیم اینجا حدیث آنس ابن مالکه حدیثم در بخوریه فضل برتری امنعاشه بر دیگر زنان فضل فرید هست بر دیگر غزه ها سأدوها فتودو الشيشومين حديث إمامة الترمذي رحمه الله ميقويات حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ من أكل الثور أقط ثم رآه أكل من كتف شات ثم صلى ولم يتوضأ حديث سهيه هنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه وغفر الله له ولأمه می‌گید که رسول الله صلی الله علیه و سلم ردیده که دستاشونو شستن بعد از اینکه کشکی را ملن بودن که گفتیم کشک همون چکیده ماست یا اون چیزی که بر روی ماست می‌مونه یا بعد از اینکه ماست رو دوغ میکنن اون سرشیر یا اون خامه ای که روش می‌مونه را آبش می‌گیرن و خشکش میکنن این بهش میگن کشک الان میخواد مال گاب باشه یا بز باشه رسول الله صلی الله علیه و سلم از این بود کشک. کشک شده از اون ماست از اون چکیده. رسول الله دوست داشتن. سپس میگه دیدم رسول الله و سلم قطعی از گوشت شانه بوزی را میل نمودن خوردن. ثم را آهو من کتف شا. ثم سپس رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نماز و لم یتوافه و وزوهم نگرفتن. تجید نکردن. که قبلا گفتی اشاره کردی که رسول الله صلی بعد از گوش خوردنی که گوشت که پخته شده بود وضو می گرفتند این امر منسوخ شد و اینجا هم این نسخ را ابوهره رضی الله عنه می‌خواد مباورشونه که رسول الله علیه الصلاه و السلام دیگر بعد از خوردن گوش وضو نگرفتند وضو دیگه نگرفتند یک مسئله هست اینجا شیخ عبد الرزاق اباطریش اشاره میکنه میگه اینجا یک دقتی هم باید در حدیث داشته باشیم اونم این که وزوی اولی غیر از وزوی دومی هست اون وزوی اولی وزوی لغویه وزوی آخری که به نسبت گشت اومده گشت بز اومده اون وزو وزو شرعیه چون وزو در اصلاح لغویش شسته ده رسول الله صلی اللہ علیه وسلم کشکی را خوردن دستشون هم شستن ابو حراره میگه دیدم رسول الله صلی علیه بعد از خوردن کش دستشون شستن. نه این که وضوی شرعی را انجام دادن که مچه دست را بوشیره بعد صورتش و بعد دست آرنجش و بعد سرش را مست بکنه بعد پاها شو بشیره. نه. اینجا رسول الله علیه السلام میل میبودن دستشون هم شستن. یکی از چیزهایی که میشه برداشت کرد شستن دست بعد از غذا خوردن. شو سره دست بعد از غذا خوردن قبل از غذا خوردن چی حدیثی داریم صحیح باشه نه نداری حکمش شیر میتونیم مباحه میتونی دست بشوری نه قبلش نه بعدش نمیتونی بگی تو سنتته شو سره دست بعد از غذا سننتیس نمیتونی اجازه برداشت بکنی که سننته چون ما قبلا هم داشتیم صحابه رسول الله علیه و سلم در مسجد غذا خوردن دستشون به سنگ کشیدن و یک تقریری تائیدی هست از رسول الله علیه و سلم بر اونها بر فعلشون اگر فعلشون خلاف سنت بود بهشون میگفت با نچی بیرید دستتون بشورید و سکوت رسول الله صلی الله علیه و سلم این فعل میده مشک تا داره کسی دستش هم بده غذا نشوره حالا خصوصا الان که خاشق و چنگالم هست سنت نیست که ما به چشم سنت نگاه بکنیم شستن دست قبل از غذا یا بعد از غذا ترچنکه قبل از غذا شاید پاکیزگی باشه خصوصا الان کسی که میخواد با دست میل بکنه ولی که به چشم عبادت و سنت نمیشه نگاهش کرد این جز مسائل عرفی هست پس اینجا رسول الله صلی الله علیه وسلم دستشون رو شستن بعد از اینکه کشک را میل نمودن میگه سپس دیدم که رسول الله صلی اللہ علیه قطعی از گوشت شانه بوزی را میل نمودن سپس نماز خوندن و تجدید وضوع نکردن ولن میتواده اینجا وضوع وضوع شرعیه چون قبلا رسول الله صلی اللہ علیه وسلم وضوع میگرف وضوع شرعی میگرفت بعد از خوردن گوشت گوشتی که پخته شده بود این میخواد حکم نسخ این قضیه را برسونه به بهمون. سادوا هفتوا هفتمين حديث إمام الترمذي رحمه الله ميغياد حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن وائل بن داود عن ابنه وهو بكر بن وائل عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفية بتمر وسويق أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفية بتمر وسويق أنا بن مالك رضي الله عنه مليمي رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوت عروسی رسول الله علیه و السلام بعد از یک ازدواج کرد با صفیه چی بود؟ خرما و سویق سویق چیه سویق گندمه اون نونی که با گندم پخته میشه حالا میاد یکی از غذاهای محبوب رسول الله علیه و السلام هم که حیثه که قاطی میکردن خرما را میکویدن و مخلوطش میکردن با نان گندم حالا روغنم هم روش بود. قایم داشت. البته حدیثش در صحیح در صحیح بخاری از حدیث انس بن مالک که در روایت دیگر میگه انه وصل الله و سلم اولما علیها بحیس. اینجا مکنونات حیس را داره بهم میگه. اون حیس با چی درست میشده؟ با چی درست میشده؟ با خرما و گندم. گندم رو خرد میکردن با خرما قاتش میکردن میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم ولیمهش دعوت عروسیش خرما و اون گندمه بوده. همون حیس. اینچنینی درست میکردن البته جایی روغن هم قاتیش میکنن یا یا نمیکنن. پس اینجا رسول الله علیه و السلام دعوت عروسیش با ام المؤمنین صفیه رضی الله عنها بعد از اینکه آزادش میکنه و مهرش هم آزادیش بوده مهرش آزادیش بوده یعنی آزادیش را مهرش قرار میده چون قیمت داشته مجانی هم عروسی نمیکنه رسول الله علیه و سلم بر هر قط زنانش مهری گذاشته اینجا مهر صفیه رضی آزادیش بوده او رو آزاد میکنه و باش ازدواج میکنه و در عروسیش خرما با اون گندم که قاتی شده بوده صحابه خودش را رضوان الله مجمعین دعوت میکنه بر اون و از اون میل میکنن. این افتخاره این توازعه اینی که من سرورم من آقای قومم من رهبرم من فلان کسم فلان کسم الان این همه تابع دارم این همه فلانم باید عروسی دخترم اینطوری باشه عروسی خودم با چینی باشه نه با خرما و گندم بوده با خرما و گندم این گفتیم تواضع و این باید راویش حد ما در زندگی باشه اینها را باید یاد بگیریم اینها باید الگو بس باشه نه چشمه هم چشمی با دیگران که دیگری فلانی 500 نفر دعوت کرد عروسیش این هزار نفر این فلان تالار کرایه کرد این اینقد گوسفند و بس سر زد رسول الله صلی الله علیه و وسلم چی کردن در عروسی خودش چی تقدیم کردن به مهمان خودش به مهمان خودش خرما دادن عیب نیست عب اینه که خود رو سیاه کنی با قرض و بدهی به خاطر فخ فروشی به خاطر اینکه اسم و نامی و رسمی برای خودت بسازید اسم و ساختن با هزینه کردن نیست با پول نیست با خوبیه با خوب بودنه با نیک بودن با بودن سبحانك الله والحمد لله سبحان الله والحمد لله الله علی محمد و علی محمد